Raz mas zune buto avrerie to Vlaseni puste pastu me vire to Harvad mas zune buto avrerie to وشگی پشت پستو میویره تا چطور کسو کارو وقتی میشودی یا تی وریوم خنوم و مارت نبزی چطور کسو کرد وقتی میشودی یا تی وریوم خنوم و مارت نبزی عجب دو زرد نرمکا پرومو زرد کا؟ عجب دا زرد نارم که پدر اومو زرد خارم که پتو دا وجه دو کمبو با مکنود می گرم که پتو دا وجه دو کمبو با مکنود می گرم که ادوهر رو بیو منه باذی کریم بیو تؤکری ما پیش من بذی کریم, کریم. ادوهر رو بیو منه کریم بیو تؤکری ما پیش من بذی کریم شعات خاش خش خش ده رابار تو بدی یه جور و جور ری زم میمده زغاب بزی کخش کخش در ابارتو بزی جور بجور دے زممے دو عجب در زرد نارم کا زر مو زرد خرم در زرد نارم کا زر مو زرد خرم کا قطو دا واجدو کم بو بومکنود مدگارم کا قطو دا واجدو کم بو بومکنود مدگارم Gracias.